پشتم در حراس از روز محشر قصد داشت من حسینی گفتم و خیرش به اجدادم رسید سینه زدن برای تو با من با من از نزیارت آقا با تو با تو سینه زدن برای تو با من از نزیارت آقا با تو گریه تو روزه های تو با من با من قبل و قیام تمااق با تو گریه تو روز های تو با من. با من. با تو من, من قبر و قیامتم اقا او شب اول قبرم منو تنها نذاری شب اول قبرم منو تنها نذاری آرزوم تو قبرم رو چشم پا بذاری چشم پر بزند حسین آقا ما گم آقا حسین هیئت بیت الزهره سلام الله علیها b <بتزس. ایر>